خب بسم الله الرحمن الرحیم فصل المساقات فصل بعدی در رابطه با مساقات هست مساقات اینه که شخص نخلش رو یا انگورش رو بده به شخصی که اونو آبیاری بکنه روش کار بکنه و سهمی مشخصی از اون سهم رو هم بهش بده و از نوع اقود لازمه می باشد لازمات طرفین کسی نمی کنه از اون دو نفر فسخش بکنه والمساقات جائزة ان النخل والكرم ولها شرطا مساقات جائز است بر نخل و بر انگور بله یعنی مذهب امام شافی رحمت الله علی در این مورد دائرش از تمام مذاهب تنگ فقط در نخل و انگورش جایز میدونند در درخت‌های دیگه نمسان که نمیتونه پورتقاله شون مساقط بده یکی که اونا رو آب بده در مقابل سهم مشخصی که بهش بده فقها مذاهبشون با هم دیگه باز هم نظریات متفاوتی دارن ولی هست برخی میگن که هر درختی که اصل داره پایه داره درخته میشه چش داد مساقاتش داد بعضی میاند هر درخت سمردار رو میشه مساقات داد در هر صورت میفرماید مساقات جایز است بر نخل و بر انگور ولها شرطان و دو شرط دارد احدهما ان یقدرها به مدت معلومه مشخصش بکنه با یک مدت معلومی. مدتی که درخت در درون سمر میکنه معنید یه سال، دو سال، سه سال، بیشتر، کمتر بله سرت اولش اینه که پس به مدت معلوم اونو مقدر بکنه مدتشو معلوم کنه و شرط دوم اینه که ان یعینه یعنی للعاملی جزاً معلومه من الثمره تعین بکنه برای عامل برای کارکن، جز مشخصی از ثمره شما بگه آقا این باغ من رو به شکل مساقات به شما دادم در مقابل یک ثومه خورمه یا یک دوفومش، یا یک چارمش، یا یک مش در هر صورت فرقی نمیکنه، ولی مهم اینه که تعیین بشه که درگیری پیش ناد. ثم العمل و على الدرنين کاری که هم تو همون باغ میشه بر دونه عملون يعود نفوه الى الثمره فهو على العامل کاری که نفعش به ثمره برمیگرده به میوه برمیگرده کاری که اثرش به میوه برمیگرده فهو على العامل این نوع کار بر عامله مانند چه بانه اینکه که نخلا رو لقاح بکنه آه شکوفه نه رو بگیره در ماده تلقیح یا مثلا بریدن چوب های درخت نخل خورمه یا مثلا انگوره رو تعریش بکنه آه چوب بیزنند از زیر بله پس این عملی که نفعش به میوه بر میگرده. میوه درخت بر عامل است و عملون رب اما عملی که نفعش به رب اما که برمیگرده نفعش به زمین این بر رب الماله. من منون مثلا چار دیواری کردن باغ نیاز داشته باشه خب این که بر آمل نیست این بر صاحب ماله یا <تذن> <تذن> مثلا چاه نیاز شد چیزی دیگه خلاصه که به زمین برمیگرده نفعش این بر صاحبه مال هست فاصل الإجارة إجارة. وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقائينه صحة إجارته إذا قدرت منفعته بأحد عمرين بمدة أو عمل. وهران چك ممكن باشد نف بردن أز اون همراه با باقيمان دن أصل اون چيز مثلا خلات برای بوتون رزی اجاره میکنه اصلش باقی میمونه نفعش رو طرف میتونه ازش بهره ببره کارشو انجام بده این اجاره دادنش جایزه صحت میگه اجارته اجارش صحیح هست بس هر چکه ممکن باشد نفع بردن با اون چیز با باقی ماندن اصل چیز صحیح هست اجاره اش اذا قدرت منفعه به احد رین زمانی که منفعت از اون چیز مقدر بشه، مشخص بشه با یکی از دو راه، با یکی از دو چیز به مده یا به مدت او عمل یا با کار به چه شک؟ مثلا بگه این خلاته رو من از شما اجاره میکنم که این خونه ما سخفش رو بطن ریزی میکنم اینو میگن به عمل یا یعنی این که من این خلاته شما رو یک هفته اجاره میکنم پس هران چه که ممکن باشد نف بردن با آن با بقای اصل اون چیز صحیح هست اجاره اش زمانی که مقدر بشه منفعت اون چیز اجاره شده با یکی از دو کار یا با مدت که بگه مثلا من این خلاته شما رو یک هفته اجاره میکنم یا با عمل یا میشه میگه که آقا من این خلاته رو از شما اجاره میکنم تا این کار انجام بدم ها؟ یا بگه من ماشین شما رو یک هفته اجاره میکنم یک روز اجارش اجاره یا این بگن نا منو تا شیراز برسون اینجوری و اطلاقوها یقتزی تعجیل الاجره اطلاق کردن اجاره یعنی مقیدش نکنن به این که پول اون اجاره رو فوری بده یا مثلا براش مدتی تعیین کنن با حال باشه یا اجلدار باشه مدت دار باشه اگر مقیدش نکردن حال باشه یا مدت دار اینجا میگه و اطلاقوها یقتزی تعجیل الاجره مطلق بودن اجاره اقتضای تعجیل اجره میکنه اجرهش فوری باشه اگر تعین نکردن که فوری پول شده یا مدت برش تعین نکردن این اقتضای اینو میکنه که پس فوری باشه الا این یشترط تاجيل مگر اینکه تعجیلو شرط کرده باشن که آقا من این خلاته رو شما رو میدم سقف خونه تو بتن ریزی کن سر برج از شما پول میدم اگر شرط تاجيل کردن تاجيل اجل دار با همزه مشکلی نیست ولی اگر مطلق گفتند اون موقع میگه مطلق بودن اقتضای تعجیل میکنه یعنی فوری بودن پس اگر مطلق بود تعجیل میرسونه فوری بودن و اجاره دهنده مستحق میشه که اون مزدو بگیره زمانی که اون چیز اجاره داده رو تحویل داد بله مستحقه پولش میشه مزدش میشه ولا تبطل الاجاره بموت بموت احد المتعاقدين باطل نمیشه اجاره با مرگ یکی از دو قرارداد که اوننده ها دهنده و فوت کرد اجاره باطل نمیشه و تبطل العين المستاجره اما اگر اون چیزی که اجارش داده در این مثال خودمون خلاته مثلا میگه اگر تلف شد اجاره باطل میشه مثلا ماشین رو اجاره کرده خلات اجاره کرده موتور برق اجاره کرده یه چیزی رو اجاره کرده به مهز اینکه که اون تلف شد خود اون چیز اجاره شده تلف شد قراردادشون باطل میشه و لا ضمان علی الاجیر الا به و زمانتی نیست بر اجیر مگر به ادوان ماشینی رو اجاره کرده بود خب ادوان کرد بیش از اون اندازهی که سرعت بره سرعت رفت بیش از اون اندازهی که بار روش بگذاره روش بار گذاشت خلاته مثلا زرفیتش یک تنک ببره بالا یا جرسقی مثلا خلاصه اگر تعدی کرد زامنه. پس اجیر زامن نیست مگر به اودان مثلا قدیمما خر بود اگر خری رو میگه اجاره کرد اونو زد بیشتر از عرف یا اینکه بار بیش از اندازه ای روش گذاشت اینجا زامنه فاصلا الجاله فصل بعدی در مورد جعاله هست جعاله دیگه چیه؟ ما میگه وجعاله جایزه جعاله جایز هست و ان یشترط فی رد الضالته اوزا جعاله این است که شرط بگذارید در بازگرداندن چیز گم شدهش اواز معلومی مثلا بگو هر کسی گوشی منو پیدا کرد من یک میلیون تومان بهش میدم اینو میگن جعاله پس جعاله جایز است از طرفین یعنی از نوع عقده های جعزه هست نه لازمه اینجا جایزه چون ما جعز داریم به معنی مباح در فقر جعزه هم داریم به معنی که در مقابل لازمی قرار میگیره میگه جعاله جعزه هست بگیم، یعنی مباح هست میشه بگیم جا جعاله جعزه هست از طرفین یعنی لازمی نیست میشه هر لحظه هر دو طرف فسخش بکنن جعاله چه هست ان این جایزتون این جایزتون رو شارهین این ابی شجاع گفتن اون جایزی که در مقابل لازم میاد یعنی جایزه هست از طرف این میتونن هر دو طرف فسخش کنن و ها انیشتر تفیرد دادلتی ایوازن معلومن شرط بگذاره در بازگرداندن گم شده اش در مقابل بازگرداندن گم شده اش اوزی معلوم هر کس کوشی منو پیدا کرد یک میلون بشمیدن هر کسی فلان چیز کمی شده من بازگردون پیداش کرد آورد من پونست هزار میدم اینو میگن جاله میگه فعیدارده ها زمانی که اون طرف اینو بازگردون استحق قضال کل ایواز مستحق اون عوض مشروط میشه آه اگر شخص گفت هر کس منو پیدا کرد آورد یک میلیون میدن طرف اگر اگر من میخوام با یکی جعاله بکنم طرف میگم آقا اگر این چیز منو پیدا کردی آوردی این قدر بهت بعد از این که پیداش کرد آوردش مستحق اون ایواز میشه استحق اذالک ال مشروطه. المشروطه فا رد ده ها استحق اذالک ال المشروطه وقتی که بازش گردوند مستحق اون ایواز مشروط میشه خب ساعت